ما صفای زندگی را در شهادت دی دیام فتح نصرت را در اتحاد وحدت دی دیام ما صفای زندگی را در شهادت دی دیام فتح نصرت را در اتحاد وحدت دی Rahi hali, mośkilatu, mosemi, dafi, Fasot al-jihadas, al-jihadas, al-jihadas, al-jihad. Swoiti Muslimka. گشت خاموش و صدای از در بیابانی شادد ردی پای از تونست مسلم گشت خاموش و صدای از در بیابانی شادد دیپای پای از تونست اهل باتین ظلم ها بر قوم دارد روا گشت روزی رو شنی مسلم زی دشمنان سیاه اهل باطل ظلم بن قوم دارد رواه گشت روزی روشنی مسلم بی دشمنان سیان ما صفای زندگی را در شهادت دیده فتح نصرت را در اتحاد وحدت دیده ما صفای زندگی را در شهادت دیده فتح نسره رادر اتحاد وحدة الديدين راه حل مشكلات موسم دفع فساد الجهادس الجهادس الجهادس الجهاد <متصفيق> بنجر تودي عزيمي آغیان را در میان می رباین آب روی مسلمین را در جهان بینگرین تودی عظیمی آغیان را در میان می رباین آب مسلمین را در جهان پس چی باید کر ای سرها بداری کافران تا خزان زرگردد نوبها Darek, kafiran, więc chyba jednak, kafiran. تا خزانه زر گرد نو بهاری کافر ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم فتح و نصرت را در اتحاد وحدت دیدیم ما صفای زندگی را در شهادت دیدیم فتح و نصرت را در اتحاد وحدت دیدیم راه حلی مشکلات و موسمی دفعی فساد الجهاد است الجهاد است الجهاد است الجهاد برسری ما خان و کاشا گردد خراب به انیس و به پنا افتادیم در درمون جلاب برسری ما خان و کاشا گردد خراب به انیس صبح پنا هفتاد درمون درمونجلاب از کجا لالمزی افوان و یا اذرا بر فلسطین میں دیگ آیا مسی تبا ا کجا لالمزی افوانون چ یا اذرا بر فلسطین میں دیگ آیا مسی تبا ما صففای زیندگی را در شهادت دین فتح در اتحاد وحدت دین فتح اتحاد Rohi halnimosškilotu mai mi da fai al jihadas, al jihadas, al jihadas, al الجhoda Zindagi dagi ma tašu hun nui tam omerta zulmi nam زندگی با آتش و خون و ستم آمخته توقی ظلمی اهری من برگردنم آوخته وقتی این دادست تا کار کنم جوی خونی دشمنان را در جهان جاری کنم وقتی این دادست برخیز تا کاره کنم جوی خونی دشمنان را در جهان جاری کنه ما سفای زندگی را در شهادت دی فتح نصرت را در اتحاد وحدت دی ما سفای زندگی را در شهادت دی دیام فتح نصرت را در اتحاد وحدت دی Roj, halli, muszkilo, to małosemida, al-jihodas, al-jihodas, al-jihodas, al-jihodas.